بسم الله الرحمن الله که در یکی دو ماه اخیر مطبخ شد در مواید تو که چون یه مقدار را جبه خلاسه بحث بحث شده بایان هرز بایان هرز که در کلمات خودمانی اصحاب ما و در کلمات حصولین احل سنت به تو در مباحثی که مربوط به به اصطلاح حجت و به یه معنی میشه غالبا این طور بوده که متعبید کتاب و بعد سنت میشهدن بعدم مسئله اجماع و قیاس و استطلاح و اینها رو مفتر این متعارب در کتاب وقت سنت و بعد ما هم در کتاب ما همون را و همی به همین منحش به اصطلاح اتباه شد در بهش سنت که متراکم شده. در بحث که مثلا چه به خصوص که بیاد مثلا خبر به اصطلاح با چه چیزهایی سنت رو ثابت کرد، چون ان شاء شد. در اصطلاح اصولی گاهی با عنوان خبر یعنی ما سنه همون نبی ما بعد همون نبی ما سنه همون نبی در قبول کتاب رگاهی هم به معنی حاکیه مثل خبر راقیه مثل شعبت یا دشما رو طریقه هستها نر رو طریقه احل سنه به هر دو سنه خبته نمیشه هم به خبر هم به شعبت و هم به مسئله خود فعل نبی و حول نبی یعنی ما سنه همون نبی هسته به نحوه فهم باشه یا خود رو در مواحظ سنت بعد از هر روز به اصباح و جیدیت خبرگاهه یا پشما یا زن یا چهره ها قصدی مطرح شد که زن در احکام شرعی کلن بجرد هست یا نه و از این طور رو باشه یا دیگه باشه سابقا من توضیح از کردم این زن در این اصطلاح به معنی تریفیش ارخش شده دیگاه اونگاه دو در اصطلاح علموی اصول مخصوصا اهد سنن به معنی اقباریست که فقیه روی شواهد می میکنه این اصطلاحا مدن نمیگه که در خود روایات احل سنت در صدر اول با اون گاهی اشتهاد میگفتن گاهی هم تحریم میگفتن گاهی هم مزنه بختم میشد در اصطلاح یا زن بختم میشد این اصطلاحات به معنی راکه بود پس گاهی زن به معنای طریقیت ما به حکمه گاهی زن به معنای اعمال قبائبیست که پقیه انجام میداد، برای این که به حکم برسته که در روایات در حسنه شرعی برای اون حکم بیان نشده بعد سالان توضیحا کراراً عرض کردند، اون چی که از عهد صحابه بعد از فیرنبر محل احتمال بود حبارت این بودید که برای هر موضوع این حکم بیان بشه وقتی اینا وقتی آمدن مراجعه کردن بودن پس مثلا ما در روز مثلا ست تا موضوع داریم کردیم ست تا موضوع شاید مثلا 5 مورد شکم آمده وقیهش تیگه نیامده این عمل اشتهاد از اینجا شروع شد این که ایفیت استنبال این در حقیقت فهم اینجا شروع شد ما موازی داریم موضوعاتی داریم که در شریعت خکمش نیامده و نا شد این حکر رو از جای دیگه استفاده بکنن این شده اشتار من از این جواب شراب مثلا به سال ارزتنافض درستم شرب خرب حرام رویون از شراب موضوع شرب آمد. حالا موضوع دیگه انگور رو به کار داری که حراب حرام شراب بشه این اسمش مقدمه حرامه این هم مضوطه در روایات آمده در روایات که احضرت بشه واقع نظرت سنده که آمده این مثلا بگرد اینجا در آمده، این هم از اصول هم اثبات شده که مقضیمه حرام حرام هست خب اینم دوم پنه کاشتن از درخط انگول برانگان که که دل در کار بکنه که از پول کار خود مثلا شراب این در بر کار کردن و تحصیل پول برای سرک در شراب، این در نسوس نیامده اما رو قاعده ها هم ببینید حکمش رو از وقت مقدمه حرام اصفات گرفتید پس هین موضوع انگور رو به توشه به چیزی که میخواد شراب درست کنید این از او آمده براید که اضافه برای به عنوان فلسطین آنه برای اسم حرام شد که ما در وقت آنه بر هم خیلی کن فلسطین مقدمه حرام که این مسئله اصولی با بحث آنه بر احس که شوزا قوارق یا بود یک فکرگاشی میشه بعد پس انگور رو به کسی که شراب خروشی نداره اما ممکن از شراب بسازه شراب خوره بس. ده ها دهها میشه هنگور پس انگور رو اجاره بده ما که اجاره بده هم در انگور به خاصله شراب خروشی خود ایشان مانه انگور نید وانت داره وانتش رو اجاره می‌ده که انگور رو برن به کارخانه شرافروشی این به عنوان در برقایت نمید در میته آمده که یا جا سفینه در هم به میته یا یا جا سفینه در بود سفینه مثلا لهم نه این برای لهم انگور به کارخانه شرافروشی آیا این اجاره با سریانه در قطع میکنیم پس رو همون موضوع کم موضوع وجود داشت و پسر ها موضوع وجود داشت که به دنبال این بودن که حکم اینها روشن بشین همه باقی اشتها بی این باز شد بین علماء این اشتهاد بی این معنی غیره مثلا یک خبر رحیفی بیا که مفید زنده پس گایی اوغاز مرادشون از زن. اون حالت ترجیحی بود که برای نشهر پیدا میشد مثلا مشهر بگمه من که بوده خواهد ولاخر آوازن و عرض اسم رو بودوان هم اجاره دادن بانداره همدنگور حرامه چون از مسائل اعانه برای اسم بوده خوب خب اون رو ارزای اعانه برای اسم برای اسم برای بوده پس فهمنه این خب در ذهنسون باشه خلاصی اشتراز و خلاصی که شما در اشتراز میخورید همینه هر موضوعی این حکمش معنیم بشه وقت راه های مختلف بحث استثاران در دقیقه همین طور بود مثلا همین مثال معروف زن در قابل وجود خونه هیتی احران وقتی ها حالا خونه هیتی منقدر شده بروس نکرده این موضوع بکنش اونایی که استثاران جای میکردن اوزه همین که صادقای احران وقتی ها الان اوی ها و اونایی که استثفاب جارنه می کن شنن اگر استثفاب جارنهشی نوبت اصول مرخصه می رسه چون استثفاب بزر اصول مصرطه تکلیفه اگر اصول مصرطه تکلیف جارنهشه ترمه قاعده روشون بزر اصول تنزیلی همه اون روش نوبت اصول مرخصه می رسه یعنی اصلاف که برای از انحرمت است. دیرسه پس بنابراین این این بحث در میان علمای اهل اسلام مطرح شد از زمان صحابه مطرح شد من اکثر همینش مباحث رو در اون واقعه باب دنیای اسلام بررسی بکنم اصل بحث این بود ما موضوعاتی داریم که احکامش نیامده حالا یه بحث کبرایی بود اینجا بود که مثلا اهل بیت گفتن ما هیچ بحثی نداریم که موضوعی باشه که حکمش نیامده باشه. حالی یه بحث, حالی محب. حالی محب. حالی محب بحث در میان صحابه این بحث رو مدروقان هم میگرسن شون گوشن وجود موجود کجا کتاب یا سنته از اون من همشون میگو بازن به همیار مومین با امان وسیع رسول الله مراجعه کنن مسئله ای برسایت این کار میکردن خواهی نفایی خیلی راحت نفسی میکردن در این مسئله حکمی نیست در این موضوع حکمی نیامده این پیدا کردن این موضوعی که حکم ند یعنی بسی که طور وازمان دارن به صحیح پبول دارن و مشکلی که عرب کردن شن با مثلا بحث شد در زمان عمر که تیتی شعب خرم کرده هم درش جالد میشه مثلا این کیفر داری یعنی در کیفر شعب خرم اینا آنهای گفتن از رسول الله خیلی نرسیده این چه حکمشی از داره داره اذا مثلا چند تا شلوه بخون بعضی دو گوشی رو نداره چون فعلا هیچ هیچ نداره وجع که همین رو تن رو شده دست دو بحث تا اون کتاب ما موضوع رساله شعر من خودم ندارم که قبول میکنم خب بعضی‌ها چند تا در ما حد به واه خدا و این همون نقطهی که من از خودم اینا در این فکر بودن که ما یک موضوع داریم کلیفر شروبخم این کلیفر شروبخم در قرآن و سنت نیامده و چه کار می بیتن کنه اشتحاب می کنه کنه اشتحاب یادن یا مدنه یا تحریک یا خیاس یا تحریک بود محنش. یا خیاس یا رن از که محل سنت رو در در نرقل بهش را گفتن در در در در پیاسی بود این چی بود؟ اختیار پیاس خیفت بود گفتن در چه چهار پنج آماده و آمده کیفر آمده نما جزا رو دادی الله رسول. از سال و از سال رفت چند تا جزا و کیفر در قران آمده بیاریم شروعه هم رو به اینکه از اینها حال حق بکنه با خوده میگه از اینها بیشتر می خیلی خب غیب نرمی کردن یعنی مونی شد به حد قرد چون حضر قرد در قرد هم یعنی به بقیه حدود مثل زنا و سرقه و محاربه افسادی فرقه هم اشتا با حضر چون حضر, حضر آدم هست خیلی فوش ناموسی و همیشون کلمات بازی ساده بشه که به پس خوب به قرد بکنیم که محضر شد از همون این رد تا چقدر عزیزی شد؟ تمام فخره اسلامی اون محیار اساسش اینجا شد این فکری یعنی اون شاید بیش از نقدر درصد اون سحنه فخره اسلامی و فروع ای که میان در کتاب جوار شست و سه شده این طور در سر نومه دوازه ازال تار. اگر این شماره درست باشه مجازی باشه باید یه یک چیزی نزدیک که مثلا هفت درصد این رو استنباطیه. این در مصوص وارد نشده اون وقت آمدن یک ادهی رو با مسائل اصولی رو تا اصولا برای هم ده بود شد مثلا اون مقدمه واجب واجب یا مقدمه حرام حرام شاید مثلا هزار تا رو با مقدمه حرام حل بشد باید مقدمه حرام حرام یکی مقدمه واجب واجب, واجب. دقیقه افتتاب آمدن افتتاب رو در شروعات و حکیمی و جب رویستن ترکا فرع رو با او حل کردن اصلا بزن تراخی خیارهای خیاردن الالفور یا تراخی با استثاب رو برستش کردن مثلا بقال تقرید مشهد مثلا آیا مامون تو در نشید اینقدر استثاب در موارد مختلف در شباهات و حکمی جالی جنسی ها تلیهی رن که بهش اضافه کنند مختلف در شباهات رو به قصد رو این خلاصه بحثی بود که تا اون زن بعدها یکی از مسائلیت که در زن مطرح شد اون زن طریقی بود پس با در حقیقت زود دور مزن نشد یکی تحریق از ما در روایات خود ما در بابره داری یک تحر این تحریق در بابره داری همون زن کلابه احراه یعنی احراه تحر را این احراه یعنی زن یعنی اگر شما در اینجا نیست یک ترت داری زن شما دو درصد احتمال مجله میشد بقیه و همون دو درصد هر احتمال احراب هرج احتمال احرا و ارج و همون احتمال نماز می خوره بنابراین بحثی که از زمان ساوه مطرح شد بود جهت رأی یا ذن اشتها تحریک حالا هر چی از خودی کردن یکی از اون مواردی که مثلا من این فعل شاعری شو عرض بکنم که شی رسید به زمان ما یکی از اون هم زن بهطور یعنی زن کریری یعنی هم با اصطلاح بعدی البته این اصطلاح اولی بود دننگ اصلاح بعدی که بیشتر از و مفرصه راوری و یونانی منتشر شد به غیر جاده ارتقاض راژه غیر جاده این رو اصطلاح هم ه درصد ش درصد هزار درصد که این یواشه ها توی شکل معروفه حسالت و حجیعت زن در احکان شرعی قیبت زن نخواست اصلا زن بسر و مطلب ما اگر زن پیدا کردیم به که این حکم شرعی این زن در این جو جه ها حجیعت داره از هر سر باشه. بکنشه باشیم تو حجیعت مزن نهارنشی. که بعضها تقریب معروفی به نام تقریب انتداد شده که. حجیت زن چند تا دلیل داشت دلیل رابعش اینطلاد اگر رسال شیخ هنسوی در باشه اون دلیل رابع حجیت زنه آیا زن حجت زن نانی طریقی اعتقاد راجعش نجازه نباشه این حجیت زن جزر مباحثی بود که بعدها این در جای خودش رو باز کرد به نام حجیت زن اون این بحث حجیت زن که مفرح شد در اصول در اصول متأخر شیعه من بعد در اصول متقدم شیعه ندیدم حالا هم باشه من نگیدم و در اصول اهل سنت هم نگیدم در اصول متأخر شیعه این بحث مطرح شد با عنوان مقدمه به قول ما قبل از اینکه وارد ذکر مصیبت بشه با عنوان مقدمه دست کردن که ما یه چیزی نام قرط داریم که اون حجیت ذاتی و زن اگر حجیت پیدا میکنه اعتباری است اینه قبل از ورود در دست حجیت زن میدن و اوشن شد مثلا مقدمتا متعرض حجیت فرق شدن مثل از این کتاب مقاطی مرمون سید محمد مجاهد تباتباری طبع خدس الله محسوی سید مجاهد در مقاطی به نظر سفی شهر سات همجاز از این بزرگ در مثلا نوشته البته و آقای خامس فیهو جیه و اولش آیا قرد خودکره هست یا نه؟ البته ایشون قرد در دو مرحله برس شده یکه قرد به اخکام، یکه به موضوعه در قرد به به این عنوانی که اگر با مراجعه به مجموعه ازله شما بخش بود که مشهد با مراجعه به ازله زن برش بگردوشه بیشون این مغردنه رو هم ایشون هم که اگر محشهر با مراجعه بردنه قرط درشو جذب پیدا بشه در موضوعات هم محشهر و مغلط مثلا قرط پیدا بشه که این مایه خمده پس بحث حجیت قرط در مصر این کتب به مناسبت حجیت و مزنه آمد بسن شد بسید شد مرحوم شیخ هم که شون هم رسالاشت در در هوجیت مدنع اسم رساله ایشان چهار تا رس رسال زیاد می این چهار تا در موو جمع کردن پر همدیلی وال رساله شد یکی حوجیت و مدنع ر به رسال مصله می رسال از آنفل براعت بر اشتباه رسال از آنفل استث ها رسالتون فساضل ترجیح و ترجیحج تواجی ها ثررا مست زار مثل خودش ایندار توراجه باش سعاده در تراجیب یا تراجیب چهار در بحث حجیت مزنده مثل همون کاری مرموم استادشون در مفاسی کردند. ایشون یک مقدمه داره که حجیت رقن و اصورت ایشون برای استیفاره دست اینجوری گفتن که نسبت به حکم شرعی ایشون دیگه موضوعات خارجی رو مطرح نکردند. خوبی قرد موضوعات خارجی رو در اینجا نیاوردند. نروش نصب کرده حکم شرعی یا که یا زنی یا شهری. اون موت خودش سال در زن نیست، در زن نیست. یشون مقدمات های غلبه بسکارش شده. بعضیها از کردن رسائل با هم جام که در زمان خودش شیخ هم چاپ شده. اما این شکل رسائل در زمان خود حیات شیخه، خودش از دنده بودن از وانگاتا ولی چاپ شده. این که جمع شد اینها به سر کردن منتجه میشه بکنن مثلا استثاب نوشتن پیش نشود استثاب استثاب استثاب بود بعد اضافه امن مقام و به استثاب بخاطر که شرکی ها در برایات و اشتغال تخییر یا در استثابی حالت صادقه نهاز شده نشده اون اول برداشتن برایات اشتغال شده در اینکه حالت صادقه نهاز نشده بله هست در اینجا هم برداشتن به این عنوان نوشتن که مقاصد ثلاثه مخدل اول فرق دارد که بحث قد در مباحث اصول جزء مباحث نبود جزء مقاصد نبود مقدمه ی سند بود چه شود داشت که نبود که جزء مقاصد باشه المخدل اول فرق دارد المخدل ثانی فرق است المخدل ثالث فرق نه دو مقصد اصلا این رساله که فقط بحث زن بود مقدمت هم بحث قرص داره بعد از مرحوم شهر در کتاب های مثل کپایی که آنگه یک شکل نظم قانونی بدم بعد از خنج مقصد که مبارس الکادشون قرار داده بود سه مقصد هم این مبارس رساله ایشون نام سه مقصد حسول قرار داده مبحث اول مبحث و امارات بود که همون زنگ رو در زنی که باز در بحثم بحث کردن دوم اصول عملیه کشمک بود سوم هم تعادل ترجیح بود یعنی استصحاب را که اشتغال یک جور تا تعادل ترجیح جدا شد کتاب‌هایی هم که برنامه‌ریزیش نیست غالباً همینطوره البته مروای احسانی قدس الله یه تغییرات کلی در نواقص اصول داده اما به طور کلی در سوابق و دیگران اونده بحث هایی که مطرح شده هم میشه به و الا مرحث قرح جزه هجرد نبود و نظام همون رو از کردم. اونجایی که من تو ذهنمه این مرحث رو مگر استفادن یا در برد از گروه فیل اصلا قرح داشته باشه تاییم مخیفه بعد داره مخیف نباشیم اصلا بی این مناسبه الله من مبارس قرح رو در اصولی که در اونجایی خیلان نکردن و مرموم های مجاهد هم مرموم سامفاتی نسبتا تطبرش که تو مسائل اقوال متعرض میشه در اینجا اضافه اینکه اقوال متعرض نشده در آصالش هم میگه لن یک شکه اهل من الاغلا در اعتبار فرق و جیه فرق ظاهرا ایشون هم مسئله رو جایی نوعنون ندیده به اصطلاع الله همین چلماتی که متاخر علماء شیعه با عنوان مقدرنه بحث و حجیت و مزنه آوردن مثلا میدونی بعدها این بحث و این معروف شدارم هست که معروف نایمه قارش که حجیت به خط منجعله هست و بقیه مرجعش به خطه و مخصوصا معروف شکل با عنوان اینه این حجیت ذاتی لا, لا اشکال چی؟ این متابعه اصل عقل درد فرد و لزوم العمل علیق علا طبقه و این حجیت در اصطلاح خودشون با اینوان تقریبا مزد... تعدیل بزاتی نکردن با که یک تعاویدیست که مشعر بزاتیه ما در اونجا متحرش شدید این خلاصه ورود به برس بود از کردیم بعد از مردم شیخ قدس الله سره این مراحض یه تقویل نسبتا خوبی که بکن بکن امدتاً به استثناء بعضی ها بیشتر همون نظر شیخ رو قبول کرده و توضیحاتش بوده من از که من تکرار نمیم از فرد اینکه نکته و میار اصلی به هم در کلمات بسیم از و و هم در کلمات شیخ و هم در کلمات کسانی که بردازیشون آمدن از با اختلاف تعبیر که من متعرض شدم یاد پیدا متعرض اما بیشترین نکتش اینه که چون بعد طریقیت ذاتیشه انسان در صورت رو میبینه. میبینه و همون چیز رو میدینه وقتی میدینه خواهدن خواهدن روش عمل میکنه منجب میشه یعنی وقتی دید که مثلا نماز جمعه واجبه خب باید واجب انجام بده این خود این لزوم عمل این سر عمل رو اصحاب از ها، اسباب زادیت تریلیت قائل بوده است. و از نیست نیست. که این داریم که ما نمی‌بینیم هم آزادی ذاتی زاده شده است، برای زادی کار نیست. بحث دریافت شده که این نمی‌آزادی با برهان بشه، آزادی با ایساقوژی باشه ولی از که این بیشتر نظری از که زاده شده همین الان جلوست. این که پریلیت این زاده، این تزادی شده است. از این هم نداره کاشفیت و طریقیت عین حقیقت خط قطع این از نوری اون جرد نورانیتش و جرد ارتباط با واقعش و انکشاف واقع و کاشف از واقع و واقع هم برای انسان رؤیت میشه کاملا این این واقعی نداره راست این مثال درست جای بستش نیست اونا میگن سر تنجز و حجیب همین کاشفیت و ما از کردیم برای تفسیر معنای حقیقت خود این تفسیر رو در کلمان تا مرموم با باید تفسیر بیشتران در کلمان دیگران به این ذرافت ذکر نشده دیگه چون گذشت من فرد دارم اون سهده سال برای این که مختلی یاداوری بکنیم متعرض میشیم از از آزیان به این نه این شرف رو بنده عرض کردن مرموم آزیان به این تفسیر ندار از کدید خود جیم در واق وست در واقع اعتبار صحبت از خود میشه یا صحبت از پندجز عصب میشه باید ناظر باشه به یکی از دو مقام چون اعتبار قانونی دو تاثیر داره یعنی دو قرار در اعتبار قانونی همیشه هست مثل افغاظ فرکی یا افغاظ نجومی یا افغاظ طبیعی نیست اعتبار قانونی دو نقطه داره دو علت داره یعنی هر قانون سر جنب سر دو تا قرضه این یک از نام این قرضه از به مجرد جعل و تنجز تخلیف حاصل میشه اون قرضه از ایجاد دایی در مطلقه این قرضه از نامست. این تخلق نداره. وقتی شنیدید که مولا بخدر با, با باز کن این تنجز بیداری تنجز این منا ایجاد دایی دیگه این معناه از تکیوز این رو قرار نا میده یک قرار دیگه هم او که اون باز شدن در در خارجه او رو اصلاحاً قرار افسا میید اون براز نهایی باز شدن اون تخلف درش شصور میشه اون ممکن است اون کللف در باز بکنه یا در رو باام نکنه تو اون قرار افصار است و این تجزوز رو باز به هاظ این دو مرکبه نگاه کرد منوازی ها می فرماند تنجیر از بلاحاده قرارده اخصار یعنی اگر بلاحاده عمل نگاه بکنید اصلا قریضیه اصلا ذاتی هم نیست به رضایشون می فرماند عمل کردن طبقه و انبعاث انسان طبقه و این که طبقه حملش انجام بده این دیلن و همده قریضی به تردوریشون در حیوانات هم موجوده که مثلا ما نهارم این حیوانات دیگه چیه و چه راهیشون پیدا کردن ک اصلا تنجز به این معنی داره که ما سردر بودیم، اما تنجز به معنی اول و از شد که انصافا اگر ما باشیم و طبق قائده بیشترین معنی اصولی در تنجز همین مرتبه اول ایجاد داریست این مساله توضیحاتش گذشت و باز ما سکرار نمید از کلیم بعد از مرمون شیف غالبا همین من رو پیش گرفتن بحث مواحث و اصول رو این تحسین کردن حجت و امارات و اصول عملیه در بحث و حجت شد آمالا به اصلاح دو محصدی که در حجت به قرار دیدن و زن مثل احتران زن خاص و زن مطلب این نهره بحثی بود که در کل اصول. اصول عملیه هم ما در اونجا عرض به این مناسبتی که صحبتی هم از مراتب بکن شد در اصناع صحبت از کلمات مرموم بروژیوی و دیگران از تردیل اصطلاحی در کلمات سوریه مثلا شیعه زیاد به کار شده گاهی تردیل میکن به اخسام حکم، گاهی میکن به مراتب حکم مثلا یعنی حکم چار کاس حکم اینشایی، حکم جعلی، حکم اقتضایی، حکم اینشایی، و حکم به اصطلاح یا این مثلا چهاره بعضا میگن چهار مرتبه است. مرتبه اختزال، مرتبه اینشا تعاویر مختلفی دارد از کردیم اونی چه به نظر میگن هفت یک واقعیت بیشتر نداشت و شما مرتبه اینشا نه چهار قسمه نه چهار مرتبه داره. درسته توی مرتبه اینشا اون ملاقات مؤثر اما از کردیم این سیات تعلیلی هستن هیچ خودشون لحاظ نمیشه. مندر که در بکن وقتی مونده باشن نمیشه نه قسم رو قرار بدیم نه اخت قرار گفتیم به نظر ما شها تفسیر صحیح و دقیق ترین تفسیر این باشه که بدیم حکم تفسیر قانونی ما این حالا چون بحثاش بذاشت دیگه فقط اشاره اجمالی و سریع رد بشم تا به بحث خودمالی اونو زاره نمیرسید ما از هو حکم یک محضر بیشتر اون انشاره یک اموری هست. حقایل یه هست که اینها مراتبی هست که قبل از این شاهه قبل از زبن که اینا مرتبه نیشه به شکر که مندتا خالطا اینها رو مرتبه نیشه به ما از اونا تحبیل که به مبادی شهر یا مبادی حق که از در این سه مرحله یکی مسالق و مقاصده دو حق و بغضه یعنی حق و مولا که بر اون مسائل خوب پیدا بشه بلکه اون مخاصد وقص پیدا بشه سه اراده و کراحته بلکه اون خوب اراده پیدا بشه و کراحت پیدا اصطلاحا مبادی جهل بداشتیم نه اقسام حکمن نه مراتب حکمن بعد از این سه مرتبه مولا یا شاره یا دولت یا غالانگزا خبه ما هم کسی که هست این سه مرحلهی که قرم بود جهل خوب میکنه مثلا یا واجبه یا حرام یا مستحبه با لحاظ اون مراحلی که هست و از کردیم که این تقسیم، یعنی این نقطه بسیار نقطه لطیفی است، یک آسائی هم در پر و استظهارات داره خیلی دقت بکنید از کردیم افصلت مثلا در مقام اثبات یا در مقام اعتبارت یعنی عدل لحظیهی که ما داریم مثلا گاهی اوقات میاد خود حکم برام هر رمه علیه کمون نیته گاه یوقات میاد مرحله مسالح من مفاسد برام میشه گاه یه میاد مرحله حب برام میشه این ذرافت کار اینه که اگر مرحله حب و بغض آیا در مرحله جر ازش اتفاده وجود میکنی یا اتفاده اتفاده برام ما در ورآن هر رمه علیه کمون نیته در خود و قرآن هم عنوان مثلا یوهی قل نموهای یوهی قل تبابیم و یوهی قل متفهریم این مرحلی قبابو یوهی قل داخت کمول یوز ولا یوهی دو مرحله قرابیم شراحل این چیلی نقطه ضریفیه ما محتقیم مثلا رجال در علی النساء به ما فضل الله بعضه هم این به ما فضل الله مسالهه به ما فضل الله این جزا مسالح و مقاصد مرتبه ملاکاته پس بنابراین خوب دقت رو کنید ما چه مرحله مرحله داری سوشی روزه میشه و مبادی جهن دارید به نظر ما تحبیر از اونها به اقسام رو اصلاً دیگیم حکم ملاکی حکم حبی یا قول آن آن سه و فن حکم اختیاری اصطلاحاً در تفاوین‌ها حکم اختیاریه حکم اختیاری موردش مقامات مبادی جعل نظر ما به حکم اختیاری درست نیست بعضی‌ها اشتباه می‌گیم اقتدار گفت نه حکم اون هم در نظر ما دلاثر نیست در حقیقت از نظر ما که این تعبیر ما به در تفاسیر قانونی هم می‌خوره یعنی فرمان در تمام قوانینی که الان بشه جعل می‌کنه این هست یکی مرحله کنه سه تا هم مبادی جرم بعد از او جرم میشه بعد از مرتبه جرم سه مرحله هست با سه قسمی یکی مرتبه به اصطلاح ما اسمش باشیم فعیلیت که او اون مسئله ابلاغه به کتب انزال کتب به ارسال رسوله از کلیم در قرآن کریم این مرتبه اسمش انزال آمده لیون زروقان هم رجب و علیکم لهون برکم بی و من بلر ان شاء الله حالا تقدیر که که شما رسید بشید حقیقت مرحله معنای انتظار که اصلا انتظار چیه آیا این همون بیان مرحله بیان و حکم جریائی و ک... کیفیتی است که بر افعال داده بشه چیز بیاد ان شاء الله که بعد نه چون یه برنامه خاصی داریم ان شاء الله اونجا عرض می‌کنم به اذن شورای کمال مرحله 3 دوم بعد از از که مرحله اول احلاح یا مرحله انزاز بسر دیر قرآن مرحله دوم تنجیز که وصول به ام باشی مطلق باشه. در اصطلاح قرآنی از این ترمیش شده بلا، قاضا بلا لحومده رو کن و مندلر این مندلر همون تنجیز مرحله استدبون مرحله اخیر که انتصال به اسیانه، یعنی انسان یا اون کار رو انجام میده. یا انجام نمیده مرحله انتساب به اشیاء این ها بده ما به نظر ما چهار تا حب نداریم چهار مرتبه نداریم یک حب بیشتر نداریم سه تا جزء مبادی سه مرحله مطرح شده و این بحث که حجج و امارات رو یک جا بیاریم اصول رو یک جا بیاریم مقدمه مثلا بحث بیاریم به نظر بنده میاد که خیلی دقیق نباشه به جای این بحث ها ما اگر ما در الحاس اصول واز بشیم بحث اینجوری قراریم مثلا فصل فصل چارم و پنجرم چند تا فصل قبلیش هل مقدار رابع یا خامس یا سادس فیلم مرتبه تنجزه حق ما عنوان با تنجزه حق مقرار اون وقت بحث بکنیم تنجزه حق چیه به برای مکلد اون مرکله حسول یکیش قراره یکی زنه مطلقه یکی زنه خاصه و چون میگه این توضیاته تا وقت شد همون هفته از هزه صحبت کردیم در قرده این ما اصلا تحقیق مسئله‌ای هست که این بحث ها رو کلن برداریم به جای اونها بحث و اصولی این قرار داریم از فرس فی فلانتی مرکبت تندگیزه کن اون وقت از این که بوده بحث بشه دو این بحث ما برده نه. اصولا بگیم این حقیقت تنجز و شرح بگیم تنجز یعنی چی؟ و اصولا ما یک مرتبه غیر از بلاغ و قیل از انذار داری میانن چون ممکن است کسی بگه همین که انذار شد تنجز آن برد این بس خیلی نکات زریف اصولی داره بگیم به مجرد این که فرسوی مثلا قانون در رسانه میگفته شد دیگه متنجز شد تنجز با همه به من برسی یا به من نرسی لذا این بحث رو باید خیلی زنده و با با حصولش محرفتیم تنجز یعنی چی؟ آیا ما اصلا مرتبه نامتنجز داریم؟ کسانی که قائل به حق کسان در حقیقت بخواهم بگم مرتبه تنجز نداریم؟ این در حقیقت اون نبسینه هر طور. و باید درجهش این باشه ما دیگه مرحله تنجج همین که حکم هست حتی احتمال هم منجزه یعنی میگم احتمال هم منجزه یعنی این دیگه یعنی مرحله غلا یا حتی متأسفانه مرحله جنس نفسه خودش اختصار میکنه که ما به دنبال حکم بریم تا یعنی پیدا کنیم که حکمی نیست و الا تنجج به دنبال و هست پس بنابراین این رو ما باید اینجوری بحث بکنیم اون این تنجج رو از زبایانی مختلف بحث میکنید حاله صدیه بیشه مخونی. بحث عاده بشه که از اول شکل قانونیش بوده کنید فضای انشاءالله تکمیل بحث و با بازه بحث جدید که تقسیم اند موضوعی و تنگیه اینشاءالله فضایمون بسید سلامه